صفحه 389 این آقا چه مرد خوبی است چقدر مهربان و با محبت است از صورت او و چشمانش محبت احساس می‌شود و حرف‌های او چنان دلپذیر است که نمی‌توانم خواهشش را نادیده بگیرم حاجی سیاس سفر است عجیب بود در پاسخ او گفت نشستن پسر وزیر در دکان یک شیرینی فروشی کار درستی نیست مقام شما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد که در این دکان بنشینید با شنیدن شنیدن سخنان سفر از حسن رو به عجیب کرده اظهار داشت انصاف نیست که رفتار شما باید زیر نظر چنین سرپرستی باشد که درباره شما اینگونه گونه رفتار کند و اجازه ندهد که قجای استراحت کنید بر روی خود را متوجه خاجه کرد و گفت رفیق لطف خود را از من دریق نکن اجازه فرما این نوجوان مهربان خواهش مرا بپذیرد و در اینجا از عزیز این شلینی میل کند و با این ترتیب نشان دهی که قلبی مهربان داری از این گذشته من رازی را آگاهم که بیاری آن میتوانم توانم تو را به صورت افراد سپید پوست درآورم خاجی سیاه از شنیدن این سخن خوشحال شد و از بدرالدین حسن پرسید آن راز کدام است او هم پاسخ داد بعدا برایت خواهم گفت و سپس اشعاری را در تعریف و ستایش خاجه سیاه زیر لب زمزمه کرد که سبب شادی و خوشنودی او شد تا جایی که بدون کمترین درنگی به داخل شیرینی فروشی گام برداشت و عجیب هم همراه او داخل شیرینی فروشی شد در این هنگام بجدین حسن دنبالی سخن خود را ادامه داد و گفت من نوعی شیرینی درست می کنم که مادرم پختن آن را به من یاد داده و اینو شیرینی به قدر لذیذ و خوشمزه است که تا کسی قادر نبوده نظیر آن را تهیه کند از تمام نقاط این شهر به اینجا می آیند تا به خصوص بخرند. همین که سخن او به اینجا رسید، یک دانه از آن شیرینی را از داخل ظرف برداشت و به عجیب تعارف کرد و یکی از آنها را هم به خاجه سیاه داد. هر دو از تعم و آن لذت بردند و تعریف کردند. در لحظاتی که عجیب مشغول خوردن شیرینی خوشمزه بود، بجدین حسن محفه تماشای قدقامت و زیبایی خیر ی صورت و مو و چشم او شد و با خود گفت همانگر فرزندی داشتم باید حدود همین سن و سال و به همین زیبایی و وقار باشد افسوس که بی رحمانه مرا از آغوش همسر زیبا و دلربایم جدا کردند و به این فراق دردناک مبتلایم ساختند. نمیدانم اکنون همسر نازنینم کجای دنیاست. آهی از سینه برکشید و اشک از دیدگانشون باران بهاری سرازیر گشت. درش می‌خواست درباره‌ی زندگی و پدر و مادر عجیب سوالاتی ازو بکند. اما این فرصت دست نداد. زیر خاجی سیاد در رفتن عجیب به نزد بنزد پدربزرگش عجله میکرد بجدین حسن هم که به هیچ قیمتی حاضر نبود دل از عجیب بکند و او را به حال خود گذارد، همین که عجیب و خاجه راه افتادند، او هم فورا دکان را بست و دنبال آنها به افتاد. خاجه که متوجه شده بود بجدین آنها را تعقیب میکند به صدای بلند گفت: چرا ما را دنبال میکنی و دکانت را بستی؟ بجدین پاسخ داد: من قصد تقییب شما را ندارم دکان دیگری در گوشه دیگری از شهر دارم که باید برای رسیدگی به آنجا بروم در این موقع عجیب خاجه را مخاطب قرار داد و گفت شاید این مرد راست میگوید و دکان دیگری دارد که باید به آن دکان برود و از این گذشته هر کس است که هر کجا و از هر راهی که بخواهد برود بعد از سخنان عجیب خاجه و عجیب به راه خود ادامه دادند. و دیگر پشت سر خودا که فروش می آمد نگاه نکردند پس از مدتی راه رفتن عجیب و خاجه به نزدیکی چادر پدر بزرگ و چادر سایر همراهان پدر بزرگ رسیدند در اینجا عجیب و خاجه سیاه به عقب نگریستند تا بدانند شیرینی فروش آنها را تقییب کرده است یا خیر. عجیب که شیرینی فروش را در چند قدمی خود دید تک سنگی را از روی زمین برداشت و به سوی او پرتاب کرد اتفاقا سنگ با پیشانی شینی فروش برخورد کرد و او را زخمی کرد و خون از پیشانی شینی فروش جاری شد و تمام صورتش را پوشانید. شینی فروش هم با گوشه قبایی خود خونها را پاک کرد و از آن نقطه دور شد. عجیب که باید به نزد وزیر پدر بزرگی خود می با خود فکر کرد اگر پدر بزرگی قرصت کجاها رفته اید و چه چیزها را تماشا کرده اید آیا بگوید که به دکان شینی فروشی هم رفته؟ و از شیرینی خوشمزه ای او هم خورد اند یا نه و آیا سخنان محبت همیز فروش با او را باید بازگو کند و یا آنکه مسلحت آن است که در این باره چیز نگوید و خاموش بماند بعد از این حسن به سوی شهر در حال بازگشت بود و روی زخم پیشانی خود را با گوشه قبای خود گرفته بود و با خود گفت این چه کاری بود من کردم و دنبال این نوجوان زیبا و دوست داشتنی و دکان و کس خود را رها کردم و به این زخم جراحت گرفتار شدم در این دنیا همه گونه مردم این زندگی می‌کنند. به سری از آنها به مراتب از من بیچاره و بدبختتر و ناتوان هستند باز هم جا دارد که شوک گذار باشم بعد این همچنان به به شیرینی فروشی در شهر دمشق ادامه می‌داد. ولی شمس دین محمد اموی او پس از سه روز اقامت از دمشق به سفر خود ادامه داد و بعد از عبور از دیار بکر و موسل و فرات و دجده به بندر بسته وارد شد و در آنجا اطلاع داد که میخواهد به حضور سلطان بسته برسد وقتی سلطان بسته از شرح حال و مقام بلندهای شامستدین آنگاهی یافت او را به حضور پذیرفت. شامستدین سفارش نامه ای را که پادشاه مصر برای کلیه شاهان و سلطین محلی نوشته و از آنها درخواست همه یاری و همراهی برای شامستدین محمد شده بود به سلطان نشان داد سلطان احترامات بسیار به او كرد و وعدهای همراهی داد شمسدین محمد درباره نورالدین علی برادرش پرسشهایی از شاه کرد که او هم پاسخ شمسالدین محمد را داد و به او گفت مدتهاست نورالدین علی که مدتها وزیرش بوده است بهدرود حیات گفته و پسر او بدرالدین هم دو ماه پس از مرگ پدرش ناگهان و بهطور مرموزی ناپدید شد و دیگر کسی خبری از او ندارد من گروهی از مأمولین خود را به فرستادم و همه گونه کاوش به عمل آمد، اما متاسفانه نشانه از او نیافتم. ولی همسر نوردین علی در همین شهر بصره زندگی می و او دختر یکی از وزرای من است. شمسدین محمد با اجازه سلطان به دیدن همسر برادرش رفت، زیرا خیال داشت او را همراه خود و دختر و همچنین نوهش عجیب به مصر برگرداند. فردای آن روز شمسدین محمد با راهنمایی نمایی معمولین سلطان بسره، به خانه همسر برادرش رفت خانه برادر بنای زیبایی بود که ستونهایی از سنگ مرمر آن را زیند میداد نام نورالدین علی با طلا بر روی مرمر حک شده بود و شمسالدین محمد نام برادر را رو در روی مرمر بوسید و سراغ همسر برادر را گرفت به او گفتند او در خانهای که به شکل گنبد و در میان باغ قرار گرفته است زندگی میکند شمسالدین داخل باغ شد و به سوی بنای گنبدی شیک پیش رفت واقعیت مذهبی است که همسر نورالدین علی اتصاف آن آنکه فرزندش بدرالدین حسن فوت کرده این بنای گنبدشکل را به عنوان آرامگاه برای او ساخته است و روز و شب خود را در آن محل میگذراند و از دنیا و مردم دست کشیده است وقتی شمس‌الدین محمد وارد شد مشاهدی کرد همسر برادرش در اندوه فرزند مشغول گریه و است شمس‌الدین محمد با احترامات شایسته سلام کرد و گفت من برادر شوهر شما هستم و در جستجوی بجدین حسن برادر خودم به اینجا آمده ام تا او را ببینم و برای این منظور از کشور مصر به سرزمین بسته آمده ام چهست محمد پس از آشنا شدن با همسر برادر خود نامه نورالدین علی را که به خطی نورالدین علی بود از امامه خود در و به آن بانو تسلیم کرد در همین وقت عجیب پسر بجدین حسن و دختر خود زیبای زیبارویان را که مادر عجیب و همسر بدرالدین حسن بود به او معرفی کرد بیو نورالدین علی که تا این لحظه حالت افسرده‌ای داشت و در بر روی خود بسته بود جان تازه‌ای گرفت و به اندازه خوشحال شد و فورا عجیب نوی زیبای زیبایی خود و پسر بدرالدین حسن را در آغوش گرفت و چندین بار بوسید و در بغل خود گرفت و خدا را شکر کرد و امیدوار شد که با این ترتیب احتمال میرود بدرالدین حسن زنده باشد صورت که حسن را در چهره و سیمای زیبای عجیب میدید. او چندین بار عجیب را بوسید و عشق شادی از چشمانش روان شد. در این هنگام شمس‌الدین محمد گفت: ای بانوی من، خدا را شکر که دوران اندوغه پایان رسید. وقتی آن است که آماده رفتن به شهر قاهره شویم. من اجازه شما را از روتان بسر گرفته ام. امید بسیار داریم، همچنان که کارها تا اینجا به خوبی پیش رفته، بعد از این هم بتوانیم بدرالدین حسن برادر عزیزم را هم پیدا کنیم. آن وقت خوشبختی ما به کمان میرسد و نویسندگان دل...